این داستان سگوی تلائی پادشاهی بود که خودش را از همه عاقلتر، دلسوزتر و خوش آفتر میدونست. اون فکر می کرد که توی دنیا مثل و مانندی نداره. روز و شب توی آینه نگاه می کرد و با خودش می ای آینه ای روی دیوار از تو میپرسم. آیا در سراسر این جهان پهناور پادشاهی از من خوش قیافه سراغ داری؟ زن جوون پادشاه که از این همه تکبر و خودپسندی شوهر در رنج و عذاب بود از گذافه گویه های اون سکوت می کرد ولی دیگه طاقت نیورد و کاسه صبرش لبریز شد و فریاد زد بس کن ای پادشاه وگرنه به تو ثابت میکنم که در گوشه این جهان بیکران خدا پادشاهی زندگی میکنه که از تو خوش قیافه تره پادشاه خشمگین از گفته های همسرش سه روز به اون مهلت داد تا اون پادشاه خوش قیافه رو بهش معرفی کنه وگرنه به جلادها فرمون میداد تا سر از بدنش جدا کنن ملکه که جانش رو در خطر دید گریون و نالون خودش رو در اتاق خوابش زندانی کرد و دو شبانه روز تنها و تنها با در و دیوار رفیق و همصحبت شد. پس از اون هنگامی که برای هواخوری قدم به بحار خواب می گذاشت صدایی کسی رو شنید که بلند بلند می گفت ای ملکه ای عزیز به من پیرزن بیچاره ره کن. ای ملکه عزیز من آدم مسکین و بیپناهم لطف کن و ای به من بده. ملکه که از عجز و لابه پیرزن دلش به رحم اومده بود انگشتر خودش رو از دستش بیرون آورد و به اون هدیه داد. پیرزن با تشکر زیاد از ملکه خواست تا قم و قصه های زندگیش رو با اون درمیون بذاره. شاید که راه علاجی براشون پیدا کنه. ولی ملکه حرف اون رو باور نکرد و گفت تو چه کمکی از دستت ساخت از پیرزن اگر راست میگی بکو ببینم چه کسی خوش قیافه تر از پادشاهمونه؟ پیر پیرزن گفت ملکه عزیز جواب این سوال که خیلی آسونه شاهزاده هفت پرده پسر امپراتور فرانسه از پادشاه ما خوش قیافه تره نه و شجاعانه این مطلب رو به پادشاه بگو. پیرزن زن اون وقت با ملکه خداحافظی کرد و رفت. با به آخر رسیدن فرصت روزه سر میز نهار پادشاه به ملکه گفت روزت تموم شد بگو ببینم کدوم پادشاه از من خوش قیافه تره اگر نتونی جواب بدی کارت تمومه. ملکه همونطور که پیرزن گفته بود گفت ای پادشاه شاهزاده هفت پرده پسر امپراتور فرانسه از شما خوش قیافه تره اگر باور ندارید میتونید به اونجا برید و به چشمای خودتون ببینید پادشاه گفت مطمئن باش به اونجا میرم ولی خدا به برسه اگر اون از من خوش قیافه تر نباشه و حرفت درست از آب در نیاد پادشاه با خدمت گذاران خودش به سوی فرانسه به راه افتاد و پس از سه روز مسافرت به مقصد رسید. در ملاقات با امپراتور فرانسه از اون تقاضا کرد تا اجازه بده پسرش رو ببینه. امپراتور موافقت کرد و پادشاه را به اتاق خواب شاهزاده برد. شاهزاده به خواب عمیق فرو رفته بود. و روش تا پرده کشیده شده بود به محض برداشتن اولین پرده نور کمسویی اتاق رو پر کرد با برداشتن دومین پرده نور بیشتر شد سومین پرده که کنار رفت نور بازم بیشتر و بیشتر شد با برداشتن چهارمین پرده نور صورت شاهزاده تمام اتاق رو روشن کرد با کنار رفتن دیگر پرده ها چهرش مثل قرص ماه پرتو و افشانی کرد و سرانجام با برداشتن آخرین پرده، شمشیر، اونیفرم و تمام چهره اون با تاجی که بر سر داشت نمایان شد. پادشاه با دیدن چنین صحنه های شگفتنگیزی مات و مبهوت بر زمین افتاد. شاهزاده دلش به حال پادشاه سوخت. و با اجازه پدر با پادشاه صحبت کرد و علت غم و اندوه اون رو جویا شد. پادشاه خوش قیافه پاسخ داد: شاهزاده عزیز، غم و غصه من به این خاطره که به زودی باید شما رو ترک کنم و دیگه نمیتونم چهره زیباتون رو ببینم. شاهزاده گفت: ای پادشاه عزیز نگران نباش، این سگوی طلایی رو بگیر و ببر. هر وقت که خواستی منو ببینی اونا رو در ظرفی پر از شیر تازه بنداز. اون وقت میبینی که توی چشم و هم زدن روبروی تو ظاهر میشم. پادشاه سگوی رو برداشت و به خونه رفت. به زنش گفت حق با تو بود. پسر امپراتور فرانسه واقعا از من خوش قیافه تر بود. هر بلایی که میخوای سر من بیار. میدونی که ندیدن اون منو میکشه. اون وقت ماجرا رو تعریف کرد و گویهای طلایی رو به اون نشون داد پادشاه که فهمیده بود خوش قیافه ترین مرد دنیا نیست تو آتش قرورش میسوخت و تباه میشد تا جایی که بر تخت بیماری افتاد و بعد از مدتی مرد ملکه ماهها و سالها در سوگ پادشاه عزادار بود اون همدمی نداشت که درد دلهای خودش رو با اون در میون بذاره و غم و هاش رو بگه تا اینکه اتفاق عجیبی مسیر زندگیش رو دگرگون کرد شبی از شبها که از اتاق خودش به اتاق دیگری میرفت وارد تالاری شد که توی اون گویهای طلایی در صندوقی از کریستال نگهداری میشد اون وقت به این فکر افتاد که امتحان کنه ببینه آیا شاهزاده فرانسوی واقعا خوش قیافه هست یا نه؟ دستور داد برای اون ظرفی تلایی پر از شیر تازه آوردن و گوی های تلایی رو توی ظرف شیر انداخت. شیر به قلقل افتاد انگار که در حال جوشیدنه. ناگهان شمشیر، اصای سلطنتی و خود شاهزاده هفت پرده با تاجی مرسه از دل ظرف شیر بیرون اومد. در نگاه اول ملکه مات و مبهود شد و دست و پای خودش رو گم کرد ولی به مرور زمان بر خودش مسلط شد. آروم گرفت و با احترام زیاد به شاهزاده سلام و خیر مقدم گفت. طولی نکشید که اونا مثل دو دوست قدیمی که سالها همدیگر رو میشناختن با همدیگه به گفتگو نشستن. پس از ساعتی شاهزاده گفت که وقت خداحافظیه ولی قول داد چه اگر احزار بشه باز هم نزد ملکه برگرده. اون وقت توی کاسه طلایی قیب شد و ره. شب بعد ملکه باز هم خودش رو در اتاق زندانی کرد و دستور داد براش کاسه تلایی پر از شیر بیارن. ندیمه ملکه که از عشق ملکه و شاهزاده به هم بو برده بود و سراسر وجودش در آتش حسد میسوخت سرش رو تکون داد و گفت اینجا حتما خبرهاییه شیر به چه کارش میاد و تمام شب با کی حرف میزنه؟ اون وقت رفت و این مطلب رو با جادوگر پیر در میون گذاشت. جادوگر گفت چنانچه ملک بار دیگر از تو شیر خواست کاسه طلایی رو براش ببر. ولی قبلش کمی خورده شیشه توی اون بریز. اون وقت میبینی که جادو اثرش رو از دست میده. به این ترتیب در شب سوم وقتی ملک کاسه شیر تازه دوشیده خواست، ندیمه مکار مشتی خورده شیشه توی اون ریخت. ملک بیخبر از همه جا خودش رو با کاسه شیر در اتاق زندانی کرد. های طلایی رو توی شیر انداخت و در انتظار نشست. شیر دوباره به قلقل افتاد ولی این بار شاهزاده با شمشیر و عصای سلطنتی غرق در خون ظاهر شد و با حضرت به ملکه گفت تو به من خیانت کردی. مطمئن باش که از این درد و داغ دق میکنم و میمیرم. شاهزاده با گفتن این حرف در میون شیر آلود ناپدید شده از نظرها محو شد. ملکه فریاد زد نه من نه دروغی گفتم و نه خیانتی به تو کردم. قافل از این که شاهزاده هفت پرده رفته بود و کسی نشونش را نمیدونه. درباره فرانسه در عزای فرانس بزرگی سوگوار بود تنها پسر امپراتور یک بار مجروح شده تمامی بدنش پر از زخم‌های عمیق بود به حدی که هیچ پزشکی علاجی برای اون پیدا نمی‌کرد بنابر اعلام امپراتور هرکس که به مداوای این بیمار عالی مقام موفق می‌شد پاداش بسیار ارزشمندی می‌گرفت تمام شهر غرق در پارچه سیاه بود. ناغوزها شب و روز به صدا در درآمده بودند. پیک ها به تمام نقاط جهان اعزام شدند ولی شاهزاده خوب نشد و بیماریش بدتر شد. این خبر به گوش ملکه رسید فهمید که شاهزاده به خاطر دوری از اون در بستر مرگ و بیماری افتاده. بنابراین تصمیم گرفت برای بهبودیش آستین‌هاش را بالا بزنه. ملک خود رو به شکل و شمایل چوپانی عادی در آورد تا هیچ کس اون رو نشناسه. پوست گوسفندی بر شانه و چوب دستی در دستش گرفت. اون سه روز از صبح تا شب با استقامت و پایداری به راهش ادامه داد. روز سوم نزدیکی های آفتاب به جنگل انبوهی رسید که پای احدی به اونجا نرسیده بود با خودش گفت راه دیگه ای ندارم امشب همینجا زیر این درخت میمونم ملکه با این فکر و اندیشه در داخل درختی بزرگ و توخالی به استراحت نشست از قضا این درخت پاتوق شبانی جادوگران بود ملکه دیروز و چوپان امروز نیمههای شب از صدای بلندی بیدار شد صدا صدای یکی از جادوگران بود که می پرسید تازه چه خبر جادوگر دوم گفت شاهزاده هفت پرده بیماره و کسی از عهده درمانش بر نمیاد جادوگر سوم گفت هیچ کس جز اون نمیدونه که راه چاره چیه این رو هم قبلا به ندیمه ملکه تعلیم دادم جادوگر اولی گفت خوب کاری کردی دومی گفت حالا واقعا برای بیماری اون چی هست سومی گفت مسلمه که هست کافیه که سبدی از علفهای زیر این درخت رو در حاونی بکوبی و آبش رو به تن شاهزاده بمالی فراموش نکن که این راز رو کسی نمیدونه جادوگر اولی و دومی با تعجب پرسیدن واقعا کسی تو این جهان از این مطلب خبر نداره؟ جادوگر سومی با قاطعیت گفت نه، هیچکس تو این جهان پهناور از این رمز و راز خبر نداره. جادوگر بعد از گفتگو همشون پرواز کردن و رفتن. با بالا اومدن خورشید، ملکه که گفتگوی جادوگران را کلمه به کلمه گوش کرده بود، سبدی از علفهای جادویی زیر درخت را جمع کرد و به سوی قصر امپراتور فرانسه رفت. فردای اون روز با رسیدن به قصر پادشاهی شجاعانه به حضور امپراتور رفت و گفت ای امپراتور بزرگ شنیدم که شاهزاده هفت پرده بیماره و کسی نمیتونه اون رو معالجه کنه. تقاضا میکنم هاونی به من بدید و منو تنها بذارید. امپراتور به حدی نگران حال فرزندش بود که درخواست چوبان رو پذیرفت. بنابراین فرمان داد هاونی در اختیار چوبان قرار بدن و اون رو با شاهزاده تنها بذارن. اونم علفها رو در هاون کوبید و آب اون رو به تمام بدن شاهزاده مالید. با کمال و حیرت شاهزاده سلامتیش رو به دست آورد و زیبا و, و با نشاط‌تر از قبل زندگی عادی خودش رو از سر گرفت. امپراتور تصمیم گرفت پاداش گرانبهایی به چوپان بده ولی اون اون رو رد کرد. اون وقت شاهزاده انگشتر خودش رو به چوپان داد و گفت حداقل انگشتر من رو قبول کن. چوپان انگشتر را گرفت از شاهزاده خداحافظی کرد و راهی خونه خودش شد راه بازگشت به خونه خیلی زود طی شد و چوپان در کوتاهترین زمان به کاخ پادشاهی رسید برای دوشیدن شیر به طویله رفت و کاسهای پر از شیر به اتاقش آورد در رو از پشت قفل کرد و گویهای طلایی را توی شیر انداخت شیر در کاسه طلایی قلقل زد و شمشیر و اصای سلطنتی و مهمتر از همه شاهزاده هفت پرده تاج به سر ظاهر شد. شاهزاده با دیدن ملکه نگاهی خشمگین به اون انداخت و گفت دیگه نمیخوام تو رو ببینم تو به من خیانت کردی. ملکه پوست گوسفند رو روی دوشش انداخت و اصای چوبانی رو به دست گرفت و گفت من کسیم که تو رو از مرگ نجات دادم اینم انگشتری که به من دادی من تو رو دوست دارم و آرزوم اینه که کنارت زندگی کنم شاهزاده هفت پردم که از همون نگاه اول به ملکه علاقه من شده بود تقاضای اون رو با جون و دل پذیرفت و چند روز بعد اون دو به خوبی و خوشی با هم ازدواج کردند اما بر سر ندیمه و جادوگر پلید چی اومد و کار این دو پلید حسود به کجا رسید پادشاه با پی بردن به ذات کثیف و نیت شوم اون دو اونا رو تبعید کرد و سزاشون رو کف دستشون گذاشت بعد از اون خدا میدونه که دست سرنوشت چه بلاهایی به سرشون آورده کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام نشانی وبلاگ ما m -E -H -R -A n d -O -U s t